داستان شانزدهم، مانیل میلان به گمانم همچو اتفاقی برای همه افتاده است یا ممکن است بیفتد تا حالا شده روی کسی اسم بگذارید من خیلی این کار را می کنم مثلا اسم طرف سلیم است همینطوری یک دفعه سلیم را سلیمان صدا می کنم نمیدانم چرا به نظرم می رسد اسم سلیمان بیشتر به او می آید تازه اگر آن سلیم بگوید اسمش سلیمان نیست و بخواهد اسم درستش را به هم یادآوری کند، آن وقت دیگر اسم سلیمان به ذهنم می چسبد و میماند و من هیچ وقت از این اشتباه خلاص نمی شدم. سلیمان اینجا، سلیمان آنجا، سلیمان همه جا. چند نفر که رویشان اسم گذاشته ام، چند روش امتحان اند تا این اشتباه هم را معدبانه تصحیح کنند. مثلا همان سلیم که سلیمان صدایش میکنم برای اینکه اسمش را درست صدا بزنم بهم به اینطور میگوند صبح با عجل از خونه بیرون اومده بودم واسه همین کیفم و همین کیفمو یادم رفته بود بردارم خوبه که زنم اومد دنبالم کرد و صدام که سلیم سلیم میپرسم کیا صدا میکنه میگه سلیم؟ خب منو دیگه اسمم از سلیمه؟ راست میگی ها. سلیمان به. رو سلیم صدا میکنه خب بعدش سلیمان بیک کسانی هم بودن که از دستم دلخور شدند چون گمان میکردند عمدن این کار را میکنم تا عصبانیشان کنم اما اینطور نیست وقتی سلیم را سلیمان صدا میکنم متوجه نمی شوم که سلیمان گفته به نظرم می رسد سلیم صدایش کرده این حواس پرتی یا اشتباه خاص من نیست میدانم که دیگران هم روی من اسم میگذارند. راستش وقتی با اسم دیگری صدایم می کنند اصلا خوشم نمیآید به نظرم میرسد که برایم ارزش قائل نیستند. همینطور همه است. مگر می شود آدم اسم کسی را که برایش ارزش قائل است فراموش کند یا اسم دیگری رویش بگذارد. مثلا مگر کسی پیدا می شود اسم دیگری روی نخست وزیر مملکت بگذارد تا نظر بگیریم اسم نخست وزیر است. زنش و نزدیکانش ممکن است عبدوش یا عبدوش جون صدایش کنند اما دیگران هیچ وقت به عبدالرزاق بیک حتی اگر از روی حوااسپی و اشتباه هم باشد محمود بیک نمیگویند. چرا؟ چون نخست وزیر آدم مهمی؟ شاید به همین دلیل است که از دست کسانی که اسمم را اشتباه صدا میزنند عصبانی میشوم یعنی برای اینکه همه اسمم را درست صدا بزنند باید حتما نخست وزیر باشم؟ آخر برای اسمم را اشتباه صدا میزنن جان من نگاه کنید باز هم دارم عصبانی می شوم. واقعا جایی تو تعجب است خیلی ها نمیدانم چرا به من میگویند؟ مزفر لابد به نظرشان اسم مزفر بیشتر به من میآید یا اینکه من آدمیم مناسب برای اسم مزفر. آنقدر آدمهای مختلف مزفر صدایم کردند، که با خودم می گویم شاید پدر و مادرم اسم مرا اشتباه گذاشتند و اگر اسمم مزفر بود؟ واصلا بهتر میشد. شد. مادام سعی میکنم با روش های مختلف به کسانی که مزفر صدایم میزنند حالی کنم اسم مزفر نیست، حسن است. وقتی دارم جان میکنم و به هر ترتیبی شده سعی میکنم کنم بهشان بفهمانم که من مزفر نیستم حسنم آنها هم طوری که انگار لج کرده باشند میگویند، یعنی به جای اینکه که حسن میگوین مزفر آره مظفر بیک و اینطوری بیشتر لجم را درمی آورند میدانم قصدن این کار را نمی کنند. اما باز هم ناراحت میشوم. توی این دنیا حسن حسن بودنش را بداند مزفر هم مزفر بودنش را بدترین اشتباه از آن نکه به سلیم میگویم سلیمان در آخرین سفر خارجی هم اتفاق افتاد کاری پیش آمده بود و بایست میرفتم مانیل. همه به هم می مانیل جای دوری است. اون ور دنیاست. کلمه دور خیلی آبور میدارند می دارد. یعنی قابل تفسیر است. وقتی می گویند دور است، باید پرسید نسبت به کجا دور است. مانیل نسبت به کجا دور است؟ اگر مانیل نسبت به استانبول دور است، پس استانبول هم نسبت به مانیل دور است. حالا کاری ندارم کدام یکی نسبت به کدام یکی دور است. من بایست به این سفر دور میرفتم. نمیتوانم با قطعیت بگویم چند ساعت یا چند روز با هواپیما رفتم. چون وقت محلی در بعضی جاهایی که هواپیمایمان من فرود می آمد و در هر کدامی که دو ساعت می ماند، از وقت استانبول دو ساعت، حتی سه ساعت جلوتر بود. برای همین زمان و ساعت را قاطی کرده بودم. فقط این را میدانم که بعد از گذراندن یک شب کامل و بعد یک روز تمام در هواپیما دم غروب در هنگ کنگ به زمین نشستیم. قرار بود شب را در هنگ کنگ بمانیم و صبح روز بعد اول وقت باز با هواپیما به مانیل برویم. وقتی از هواپیما پیاده شدم و پایم را به هنگ کنگ گذاشتم که در بیشتر فیلم مثل شهر اسرار نشانش می دهند، از خستگی پاک گیج بودم. گیجی از توی هواپیما شروع هواپی مسافری که توی هواپیما کنارم نشسته بود، علت علمی گیجی را توضیح داد. چون زمین از شرق به غرب می چرخد، اما هواپیمایمان بر برخلاف زمین از غرب به شرق می سر مسافرها هم گیج می روید. خلاص علتش هرچه می خواهد باشد. وقتی پایم را روی خاک هنگ کنگ گذاشتم، گیج بودم. هنگ کنگ این گیجی هم را بیشتر هم کرد. پس از آنکه وسایلم را توی هتل جا به جا کردم با خودم گفتم خوب است گشتی توی این شهر بزنم که توی فیلمها مثل شهر اسرار نشانش می‌دهند اما چون توی فیلم ها طوری نشان میدهند که انگار هنگ کنگ پر است از گانگستر و دزد و قاچاقچی پولم را توی جیب عقب شلوارم گذاشتم و با احتیاط دستم را هم روی پول نگه داشتم مشغول تماشای ویترین مغازه ها شدم داشتم ویترین وسایل ساخته شده با آج فیل را در ویترین مغازه تماشا می کردم که یک دفعه در مغازه باز شد. و زنی چینی با اشف و ناز به طرفم آمد و طوری که انگار سال هاست دستم را گرفت و به طرف مغازه کشید. کشید که ارز کنم به طرف مغازه هلم می به با خودم گفتم اگر پایم را توی مغازه بگذارم چینی ها توی یک چشم هم زدن دار و ندارم را میبرم. عین فیلم های آمریکایی آن وقت آن سر دنیا میماندم بی پول و بدبخت شاید توی مغازه گولم می زدند و جنس بهم به می فروختند شاید هم کتک هم می زدند و پولم را می‌گرفتند. همانطور که زن دستم را میکشید و هلم میداد؟ حسابی حول برم نشت زن می کشید من مقاومت می کردم. چون یک دستم روی جیب جیبقبم بود که مانده بود مقلوب زن چینی بشوم زن از یک طرف از زیبایی آچ و ارزش مرواریدها میگفت و از طرف دیگر مرا میکشید من از یک طرف فریاد می زدم نه آج می خوام نه مروارید و از طرف دیگر یک دستم روی جیب عقب در برابر زن مقاومت میکردم که نومید شده بود یک دفعه ولم کرد و من چنان مقاومت میکردم که یک دفعه سکندری رفتم و کم مانده بود زمین بخورم این بلا رو که از سر گذراندم از ترسم دیگر به ویترین و مغازه ها نگاه نمیکردم. کردم یک دفعه مرد چینی لاغر مردنی آمد کنار و پرسید سیر. You like nice girl? این دفعه بیشتر ترس برم داشت داد زدم نمیخوام هیچی نمیخوام دست از سرم وردارین به خودم گفتم بهتر است تا وسط این شلوغی بلایی سرم نیامده به هتل برگردم و بگیرم تخت بخوابم روز بعد صبح زود از هتل بیرون آمدم تا به پرواز مانیل برسم سوار تاکسی شدم و به فرودگاه رفتم میخواستم از دختری که در باجه اطلاعات نشسته بود بپرسم هواپیمای مانیل ساعت چند پرواز میکند نمیدانم از خستگی آن سفر طولانی بود یا از گیجی پرواز بر خلاف گردش زمین یا از ترس خلاص از هرچه بود دوباره شروع کرده بودم به اسم ساختن مانیل و میلان را با هم قاطی کرده بودم شاید دلیل اشتباهم این بود که حروف هر دوتا اسم یکی است فقط جا, جا میشوند از دختر توی باجه اطلاعات پرسیدم. پرواز میلان ساعت چنده. اصلا متوجه نبودم که گفتم میلان. گمان میکردم مانیل گفتم. دختر از تعجب ابروهایش را بالا برد و پرسید. کجا؟ کجا؟ من با این گمان که مانیل میگویم دوباره گفتم میلان. دختر بار دیگر پرسید. میخواید برید میلان؟ از نفهمی دختر عصبانی شدم و با خشونت گفتم بله میخوام برم میلان ببخشید از کجا اومده از استانبول چرا از استانبول مستقیم نرفتید میلان و اومدید اینجا؟ همونطور که متوجه نبودم به جای مانیل دارم میگویم میلان اسم میلان را هم که دختر مهماندار بر زبان می آورد مانیل میشنیدم گفتم چون از استانبول به میلان پرواز مستقیم نیست برای همین دیشب با هواپیما به هنگ کنگ اومدم امروز صبح هم از اینجا به میلان میرم صحرای دیگر هم که صحبت‌های من و دختر مهماندار را شنیده بودند دور باجه اطلاعات جمع شده بودند و با تعجب به حرف‌هایمان گوش می‌دادند. دختر گفت: فکر کنم مسیر را برعکس آمده اید. یعنی چه برعکس آمده‌ام؟ مگر شرکتی که ولید را به من فروخت نمیدانست این مسیر درست است یا نه؟ برای میلان ولید خریدم به میلان هم میروم. برای رفتن به میلان هم یک شب و یک روز با هواپیما سفر کردهام. دیشب هم وقتی اینجا از هواپیما پیاده شدم به هم گفتن که هواپیمای میلان فرد و صبح پرواز دارد کسانی که دارو برم جمع شده بودند وقتی این توضیحات توهم با خشونت هم به دختر مهماندار را شنیدند خندهشان گرفت فکر کردم به حماقت دختر میخندن که میگوید از هنگ کنگ به میلان پرواز مستقیم وجود ندارد برای همین من هم همراه با آنها خندیدم و دختر مهماندار را دسته انداختم دختر مهماندار گفت غیر ممکنه کسی که میخواد از استانبول به میلان بره از هنگ کنگ نمیگذره. فریاد زنان گفتم. من هم برای دیدن هنگ کنگ دلم زف نمیره. اما چی کار کنم شرکت هواپیمایی بلیت میلانو از مسیر هنگ کنگ داده؟ این را که گفتم دختر توی باچه گفت. لطفا بلیتتون را بدید؟ بلیت را به طرفش گرفتم و با خشونت گفتم. بفرمایید. دختر همین که به بلیت هم نگاه کرد انگار چیز خنده داری دیده باشد لبخند موزیانه ای زد و گفت آها شما قراره برید مانیل خب معلومه من هم دو ساعت چی دارم میگم معلومه که قراره برم میلان میلان نه مانیل جمعیت دور برم قهقه زدند اون موقع بود که فهمیدم چه خبتی کردم از خجالت آب شدم از فرد خجالت فریاد زدم و گفتم به شما چه مربوطه هر جا دوست داشته باشم میرم اگه بخوام میرم مانیل اگه بخوام میرم میلان اصلا چه فرقی میکنه چه میلان چه مانیل بعد از این حادثه خجالت آور سوار هواپیما شدم رفتم میلان ببخشید مانیل <تصفح> توی میلان نه مانیل نویسنده به اسم روزالیندا به دادم رسید برای اینکه یک جوری کمک ها و محبتهایی او را جبران کرده باشم گفتم شهری که در آن زندگی می کند خیلی زیبا است. خبر از اینکه قاطی کردن اسم میلان و مانیل به خصوص پس از آن را در هنگ کنگ در وجودم به نوعی بیماری مزمن تبدیل شده. به جای اینکه بگویم مانیل شهر بسیار زیبایی گفتم خانم روزالیندا میلان شهر بسیار زیباییه. روزالیندا همچون نفهمیده بود میلان چه ربطی به صحبتهای ما دارد و یک دفعه چرا حرف میلان پیش آمده با تعجب صورت هم نگاه کرد و گفت بله شهر قشنگیه من هم شنیدم یعنی چه من هم شنیدم؟ آدم اگر نمی‌داند شهری که در آن زندگی می کند زیباست یا نه؟ مگه به نظر شما زیبا نیست روزالیندا؟ من تا حالا به میلان ام. چون خیلی ها دوست دارن موقع صحبت با من شوخی کنن گمان کردم روزالیندا هم دارد شوخی میکند برای همین گفتم چطور میشه به شهری که در اون زندگی میکنید نرفته باشید نه اصلا نرفتم به کجا؟ به میلان خیلی شوخ هستید اینجا کجا هست؟ می... آه تازه فهمیدم باز به جای مانیل گفتم میلان حالم خیلی بد شد آن شب شهردار مانیل زیافت با شکوهی ترتیب داده بود. مهمان ها یکی یکی سخنرانی می کردند، نوبت به من رسید. سخنرانی که می کردم آنهایی که آنجا بودند به همه حرفهایم هم می خندیدند. اما حرف خندداری نمی زدم. و خودم گفتم این خنده ها نشانه موفقیت سخنرانی هم است. و با صدای بلندتر به سخنرانی ادامه دادم. مهمان ها از فرت خنده اشک از چشمانشان سرازیر شده بود. شهردار میلان. میلانی های عزیز چه آدم های سعادتمندی هستید که در شهر زیبای میلان زندگی میکنید. چون که میلان <تصفيق> گفتم از اینکه به میلان آمدهام بسیار خوشحالم های اهالی میلان را هیچگاه فراموش نخواهم کرد این حرفها را با صدای بلند و بلندتر میزدم و ها هم قهقه میزدند. از شهرداری میلان و اهالی عزیز میلان سپاسگزارم بعد همین که لیوانم را به دست گرفتم روزالیندا که کنارم نشسته بود زیر لبی گفت میلان نه منیل یک دفعه عرق از چهار ستون بدنم سراسیر شد هیچ وقت اینقدر خجالت نکشیده بودم روبه رویم دهنهای زیادی می دیدم که به قهقه باز شده آنقدر میلان میلان گفته بودم که دیگر نمی توانستم حرفم را عوض کنم بله به میلان مانیل ببخشید یعنی به مانیل میلان گفتم فکر نکنید اشتباه گفتم به میلان مانیل به, به مانیل میلان مانیل میل میل میل میل میل میلان میگویم چون اینجا یعنی مانیل میلان خاور دور است مانیل هم چیز میلان است چرند و پرند پرندهایم شنونده ها را از خنده روده بر به افتخار مانیلیها ها که همان میلانی ها هستند صدای کف زدن و قهقه قاتی شد فردای آن روز روزنامه ها تیترهایی مثل نمایندهی که در مانیل فکر می کرد در میلان است. مسافری که می خواست به میلان برود اما از مانیل سر آورد زده بودند و سخنرانی هم در زیافت شهرداری را شهر داده بودند این اتفاق را نمی خواستم برای کسی تعریف کنم اما امروز وقتی پستچی ای را که به فیلیپین فرستاده بودم پس آورد دیدم دیگر مخفی کردنش فایده ای ندارد چون اگر قضیه را توضیح ندهم دوستانی که در میلان خیلی در مانیل پیدا کرده‌ام تعجب می‌کنند که چرا در این مدت نامهای برایشان نفرستادم در صورتی که برای همه همهشان جداگانه نامه نوشتم و پست کرد همین نامه‌هایی که برایشان فرستادم با توضیحاتی روی پاکت مثل آدرس اشتباه یافت نشد در فیلیپین میلان وجود ندارد مرجوع شد چون روی پاکت نام‌ها بجای آن که بنویسم فیلیپین مانیل نوشته بودم فیلیپین میلان